اهلاك يا شيطان يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على وآله وصحبه أهله بأيدينا صاهرين معصومين لا اللهم رحمنا يه در حقیقت در هيئت دست سور از مرحوم شیخ مفرح فرمودن یکی به بناساقی این فر ما این مقرد زیادی از بحث خارج شدیم که آشان شد برگردیم به خود بعد و خلاصه تر این بود که اگر کسی برای این که به از کلاه ماهات کلاه شرگی بکنه که رشی نباشه به جای رشی دادن و پول دادن معامله محاباتی رو انجام بده حفظ مهاباتی منظری که ده میلیون میارزه به فرط روش رو بیر میلیون ولی اینکه این به بنظرش خوبه می‌گونه مرحوم شیخ عباراتشونه که من ما یعد من الرشوه او يل این یا مؤدل رشوه است یا بخ دو صورتش رو رشوه گرفتن یک صورتش رو هدیه ملحقه به برش بود هم تفسیر شرح این کارونه حرام به هر حال این کار به عنوان حرمت خودش حرام این نمر کلام در خود این معامله است که آیا این معامله به هر حال این خونه رو فروخته به ده میلیون یک میلیون. آیا خود این معامله حلاق جب صدیه یا نه کار حرام که از قبول این رو قبول کنید که رشوه یا ملحقه به رشوه و کار کار حرامیه این نمر کلام آیا مثلا فرس این دستگاه قضایی که فهمید که این کاره کرده میگه حصولاً این معامله باطل خونه رو از میگیرن و این آرد میکنن یعنی نیونش هم به خود رو آزی میگن می این معاملهشون به شهوده باطله و خب به, به اصلاح بطلان این حق رو میکنن مرمونش در زی صورت سوان فرمودن و فی فساد المعامل از ها و چون که از کردیم یه عبارتی و از مرمون مویزه چیزازی دو محروم آیه افران تغییر الله که معروف است به صاحب قضیه سهرت 20 انقلاب سال 20 مراد در سال 1920 که انگلیس ها ارام اشغال کردند. بعد جنگ جهانی اول نومت دولت اثمانی یا ترکیه فعلی در جنگ بود دولت دولت محرم بود و آلمان بود برای شکست دادن دولت عثمانی از کنوب ارام ارام روما تابع اثمانی بود وارث شدن دو اراغ و اشغال کردن در مقابل اینجای کردن از چیز قردش هم به اصطلاح خودشون اصطلاح از عرباتون از شواره از الارعی و تلکورا انقلاق بزرگ عرب که درهبری به قول خورجون به قیادت آقای شریف خسین انجام شد جدا کردن بخش های عربی و از عثمانی که منخصه شد به هم بخش فعلی که ترکیه باش. این لبهان و سوریه و فلسطین و مصر و این کشورهای دیگه حجاز و یمن و اینها رو از ترکیه جدا کردن از عثمانی اون. در حال مراد از کلمه این مرحوم های هاشم‌طهی شیرازی چون از ارکان این نهضت این معروف است به قضیه ثورات 20 در مقابل میرزا شیرازی اول یا بزرگ مرحوم آقای هاشم‌الله حسن شیرازی که دستی یک در ایران به ایشان نسبت داده شده. در عبارت مرموم ریزای شیرازی رو خوندیم و, خوندی و ایشون اولا تحریم رو فساد رو به صورت سروم زده ارز کردیم از زباغر عبارت استاد این هست که این فساد به هر صورت میکنه به نظر من همین درسته فساد به هر صورت میکنه البته خود مرموم ریزای شیرازی که دیوز عبارتش رو خوندیم در هر صورت یک نقطه از فساد گفتن برای صورت سوم یه نقطه گفتن صورت دوم اول نقطه دیگری پرمودن اولم این عبارت به هسته میخوره اینطور نیست که به فرد سوم بخوره دومن ایشون صورت اول بگوه اصد قصد آمد نذاره این تقریبی ایشون هم به حسنی نیست ظاهر عبارت شیخ اینه اما این مراد شیخ نیستن نباید تو کم بشه. توضیحاتش بودش. یک صورت را هم برگردوندند به مساله شرط صورت دوم رو مکتنی کردن در این که شرط فاسد مختل هر چه بعدن فریضه کردن که شرط باشه چون ذکر نشوند در کلام چون ذکر این خلاصه ای بود که مرحوم نژاد شیرازی و در صورت سوم یه اشاره ای به بحث اجتماع امر که حالا وضعیش درود اکثریته وضعی ما داریم تقریبش می کنیم یا آشه هاشتی که از بحث خواهش می شون استاد در اینجا مثل مرحومه میوزه شیبازی سه صورت رو کنند و سه به مبنا بر رو درواردن نه ایشون مبنا رو کنیم این گرفتن که فساد این معامله در هر سورت ممنیست بر این که اگر به صورت شرط باشه شرط پاسد رو محصد بدونیم خب اینجا هم اگر از شرط باشه اگر محصد داره اگر درست. البته دیگه میمخواد توضیح بدم هر سر صورتی رو که مرمومه شده زه که فرمودن هر سر صورت شرط نیست. یعنی ظاهر کلام استاد این است که در هر سر صورت معامل صحیح ظاهرشون نیستن بله اگر این مطلب رو بگه این خونه رو یک میگون به شرطی که به من به من حکم بکنی اینجا ایشون فرمودن این فاسده به علاقه شرط نکنه درست در صورت حرام بودن شرط هم مبنی که شرط فاسد محسد باشی داره باشی این هم ظاهر کلمات مرموم استاد پس مرموم میرده شیرازی سه مسئله رو رو مختلف گرفتن مرموم استاد هر سه صورت رو سهی بودن اما اگه شرط بکنه مبنی بر مسئله افساد شرط فاسد خلاصه نظر مبالکی یه توجیه هم در این, این کتاب آمده که نظر شیف این که در هر صورت معامله فاسده چون این فساد مبنی نیست در این دراغ فلسفی است که مثلا آیا متحد هست متحد نیست ولی لذا در هر صورت حکمه به فساد میشه این هم یک راه دیگری برای تقلیب کلمات شیف ارز که چون ما تقریب کلمات مرمومی زشگی و در یه ناداش گفتی میخواهد من قبل از این که باید تحرید بشم یواشواشون با دامنه بحث رو جمع بکنیم اولا مرموم استاد مسئله باردن شرط پاسد تا یه شرط پاسد محصول حسن این مطلب درسته جب بحث نداره ما دیروز قوائلش رو کردیم اگر فساد شرط به خاطر تحبت باشه این بحث داره مثلا یا آقا من این کتاب رو پروختم به ستوان به شرط که مثلا یه جامع شهر بخوریم. یا بریم مثلا یک حادثه رو بحث کردیم ببینیم یه چیزی ظلم و بعد اشاره فاصله مختصر هر بحثش میاد و توضیحاتش هم گذشت و تفصیل مثلا به مقدار مناسب با بحث گذاشت دیگه تکرار نمیکنه. البته ممکن است که میزای شیرازی هم صورت دوم رو از این راه رو از طریقه. که لیمزان توضیح گذاشت محقق. معلومه ایروانی راحت اینجا، دیگه اباکشون نمیخوام خیلی طولانش دیگه ابا از معلوم ایروانی را می بکنم آن مراجعه کنم تقریبا این مسئله شرط باید از کنم حضورتون که این مسئله که آیا شرط فاسر مفسد هست یا نه این درسته جزو مواحظ قوائد فقه چون مواحظ شروع رو تو قوائد فقهیه نوشتن و سابقا هم توزیه ها توش رو به مقدار اجمالی ارز کردن لیکن بنده ارز کردن مواحظ فقه یا اصول یا قوائد فقهیه یک بحث کبرهی و کلی داره اضافهی برای بود در بعضی از موارد جزئی اصابه کرد. ما نباید بگیم مثلا این شرط خاصل محصل کرده. در اینجا اگر شرط میشه بهش رست ما هست کردیم در خلال موارد موارد موحرم یا تطور کردیم ما خود ما شاید موحرماس خیال بکنیم یک نواد اما اینطور نیست محرمات مراتبشون فرم میکنه حالا یا به خاطر این که خود احرم نفس خیلی حرام شدیدیه یا به خاطر این که بند حرام ها حسولا بیشتر مورد ترکیه حتی موسیقی ها قرار گرفتونه مثال شم باید نرسیدن باید که نظر خون جزو محرمات مردم از ها خون نمی کسی دیده خون بخوره. اما شراب زیاد خواهد مای محرمت خواهد زیاد خ حتی حاضر شاید مسرمونه یا پس حکام یا خادشان ها یا برساره خود اون خلقه ها اون زیاد نفردن اما شبار میخوردن یه مقدار ممکنه از تشدید تشکیل در رواید ما داره که رواید در معاملات خوب الگرازه زیاده یه تشکیلی اوی بعد در محرمات میاد یا حالا واقعا نکات پیلی داره که ما متنم نیستیم یا به خاطر این اون ریشه هاش تنده بشه چون توی جامعه نحوز پیدا کرده ما در حتش محرم نتاییم شما قدمات فریدش حرام باشیم ما نداریم اصلا راکیب میکه مقدمات فریدش ما خوامشیم دیونی یک جایی که مثلا میکه بخریم این خود راقرسته شما حرام بود شاز نداشت باشیم اما توش حرام در اون دقاقه تو درباات سالابقه هم گذشت کارتکار میکنن که بعد از موتونین سو بر از موتونشه تو بر از موتونونه شما آمده ح تا زار آ ها یعنی شما ازانیه قرار هنگور رو رو درنی میکنه این تاهنگور می بهدار هنگور رو برشراب با باشیدی که وجودسه سال تول میکشه و ممکنسان بمیهدار تا حاضه میشهخوا توبه خیلی فاصل زیاده اما چهبار با این فاصل زیاد مزار بود دق میکنه این به شما مقدمات فوق الازه بریده کاشتر نیگه قدمه انگور تا تریه شراب خیلی خاطر زمانی داده لکن به خاطر شدت تحکیب و حرمت شراب ولی ذا به سول کردی من احس در محرمات درجات مختلفی داده یه دفعه مثلا بشینگاه من بسید که در, در موسیقی یه خیلیبت میکنی یه دروب بگیگه یه دفعه بزنی یه دفعه مسئله رشوه به خاطر که به نفروه حکم میکنه به شیره و حکم این اینه که من فکر میکنم در تو بود تجنظر میفرمون به توی مجلع اینه نیمیش رو مطمئن شرط پاسر هردش کن این موردیه خب این مطلب با من با خصوصی آزش کردن از نماز سحابه و تابعی نه رو شده عرض شاصل خود سحابه از سوال ما هردی تو وازه ما هم آمزه هم هست لیکن هر سنب این داره این فیال هم این طورات ماست از صحابه صادقه <تصفح> تو موضوع عهد سنت هم آماده وقتی یک چیزی در حد کفر به الله العظیمه ام نرشاب یا ام مار ام مارد نروا سندر و یه فراغو بر به الله العظیم از در مور معتقلیه نمیشن تا جامعه نواده صبح همی از حواده درست کرد یک شرط فاصل موسیقه هست یه شرط مثل کفر بالله باشه این با که مثال فرصه تو برو همسیده چیزی شیسته در بیان بسن خب این یعنی زمین فاصل فرده نباید شرط فاصل رو یک نواد ببینیم وقتی یک مسئله مهم می پیشین حالا این اهمیت مسئله رو چی جوری باید درمی کنیم یعنی آران گفتن مثال تو اگر ما اسیان اهم کردی من رو مهم فیلی می کنم بسید ترتبار مرموم حتی این هر یه هست که با آف اصلا در تحریکتی در مهارمزان نیگه دیگه بکنه اصلا نیت تا روزه غذا بکنه یا نیت تا روزه تباره بکنه آمین ترتبار موزش باطله نه مهارمزان حساب میشه نه اون غذاه ساموشی این شدون باطل مرموم استاد از را ترتب درست شده که اصیان عمر روزه ماه رمضان میکنه اما روزه قضا رو جمعه به نحوه ترتب درست ما اونده توضیح داریم سر این که اصحاب ما قبول نکن ترتب رو چون روزه ماه رمضان جزید ترائز الادیه فمن شهده میکنم و شهر فلی یه سومو و من مریضا و علا سفر فعدتون منتعیابن و هر حیل از ماه همزان بالداشه خارج از ماه همزان اصولا از این به اصلا آیه این رو فهمیدن که این به جهل الهی برای روز ماه رمضان لذا اگر بخواد خودش به جهل شخصی چون این شخصی که فردان با اونه قضا روزه این جهل شخصیه توضیحاتش شما انز کردیم جعل شخصی نمیتونه بیاد اینجا درسته ترتب ها اینجا درسته می کنه قاعده ترتب هم در این جوجه ها که هم را یقید دقیق کردید نقطه پن نیشیه مثل خود مرمومیزا نایمی می فرمه اگر امغاز قریق بایی که اهم ندره بکنم مشکل نماز باشی میگه اینجا نمازی باطل یعنی به اینجا امغاز قریق و اضاده اینجاست از مسیح فهم میدون درست هم هست امغاز قریق کجا اضاده اینجاست از مسیح کجاست؟ اینا با همدیگه فهم میدونه وقتی در جایی یک چیزی به عنوان کفران به لاره نده این رو به عنوان شرط در عرض قرار بده یکی من بحث این بحث بکنیم شرط فاصل پنس رو نرزدنم این کفران به لاره نده این رو اهل شدن احمده حرامان و حرامان حلالا اصلا قائلی از این شروع تهیرک رو حیقا برسرموندن طبیعتش این بحث طبیعیه طبیعت التزامات شخصی و التزامات شخصی چون شرط التزام شخصیه من التزام می‌رن به کار. این کاری نه التزام شخصی طبیعت التزام شخصی باید به خود قانون در نیاد در مقابل قانون نایستد وقتی که خود در لایق بالاتر قانون نه اضافه تحت یک قانون التزام در همه انسان چون گناه بزرگتر از التزام جزالت مشخص روایت واهی که بهتی وجود داشته وش از مأمورت مثل ده. کفر ملایل ازی مثلاً تعریف کن. این به نظر من انسانه. معروف استاد چه تعریف نیست؟ جو بحثش و از که هوال کفر جو زه بلال کفر ملایل ازی. و ما از آن این التزام شخصی شما که حقده زی. درسته که چنین التزامی رو با کفر ملایل ازی چطور می‌شود؟ انصاف حقیقت پس این که یکی یکی داره موارد روشن میشه. ما این مسئله رو مقتضی بکنیم برای اینکه شرط فاصل مبسوط به بنظر ما این است. در واقع معامله رو بشه. یه امر مراد فرض. که بخواد انسان همراهو کفر به عظیم قرار بده. مثل این که خاصی مثلا این که کسی بخواد عهد می‌بنده و این که کارهایی خیلی کوچیکه فقط که از کارهای این که کوچیک حساب بکنه جاسوسی جاسوسی در یک کشور از همه چیز و گناهان بزرگه از راه جاسوسی ترنیمال میکنه. یا ارز برده یا ارز داد می‌بنده اصلا دروازه رو دولت اجازه نمی‌کنه اون اموال رو هم مصادره میکنه، اینکه اجازه میکنه. چرا چون عظمت جاسوسی چین اقتدار کرده چون امنیت کشور در خطره جایی که اصل نظام در خطره دیگه نمی‌خوان قواعد عامه و مراعات رو کنه خاصا وقتی این که این مسئله رو اجراه به اصلاح مسئله شرق خاصه بخواهیم حل بکنیم و جواب بدیم انصافاً به ما تمام نیست و این شرط مخصد عقبه چرا؟ چون همراه کمره بله لعظیمه داره انتظام شخصی میبنده در حد کمره بله لعظیم این شرقه روزر ما جای احتمال قبول نداره و قد همچین عقدی و قراردادی رو هم به بخلا چون به همراهش مسئله کفر بالله رزیم نفی قانون نفی نظام نفی اسلام این نمیتونه راهی برای تقصیه وجود داشته مسئله دیگری که از شما ما قواه دیگر مطرح کردیم بحث اجتماع هم نه بود من هم میزا زادیرش در اون هر استعبون برده با مسئله به اصطلاح اجتماع نه این در این کتاب هم البته وجود سفر شخصی صحبت شده چون من آقای نیستیم به نوری مثلا کمی اوضاعش ممکن است جوری بحث این خاصیشون که اما به شروع این بحث رو مورد نظر قرار بدید ظاهر عبارت میژه در آیه مرحوم آقای شیرازی میژه 99 به سلام یکی ایشون منده بجوه اندر رشاب من المسلری سادمان علا دفعه نبید بعد ایشون که بعد فرمودن که ایلا انیوم نه بعد بگی که ایشون بعد که نه یوم که که بر خود معامله به اصطلاح بر خود حق بر خود حق رو ایشون قبول نمی کنه. در خود حمد نیورده اینجا اشاره ایش داره که حرمت محامل حرمت محامل لحظه اتحاد مردشان کلمه اتحاد از کردن اصطلاحه در اصول متعصده ما تو مبارسه اجتماعه نه یا که این اصطلاحه که در کتب اصول محامل چون مرادشون از کلمه اتحاد یا به اصطلاح مطارقه که همه هست دیمون شده در علمات معبومی نایمینوها ترکیب اتحادی این در مقابل ترکیب انزمامی این طور استولار معروفی است یعنی اینا آمانا که مسئله اجتماعان نهد در جایی میاد که بین این متعلق امونن یک ترکیب یک نوع نهد ترکیب اتحادی باشه اما یک ترکیب انزمامی شد نیستی که در حال سلاف نگاه کنه برشنبیه این موجه بسال نماز, نماز نمیشه اگه ترکیب نید کلمه اتحاد و مراد از کلمه اتحاد هم توضیح ها باشید هست که این دوست روزه مراد این است که متعلقه را متعلقه نه دقیقا یک چیز باشه یعنی دقیقا و مراد از یک چیز یعنی یک عمل وحدانی که در خارج دقیقا یک عمله دوتا نیست دقیقا عمل واحدیه یعنی این عمل واحد دو تا عنوان به ترمیل آقایی امتضا میشه که من درمین اینجا نشستم این نشستن من دقیقا یکیه. chiه چندها نشستن که نیکی لیکن تا عنوان انتضا میشه من روی زمین هستم وزیر سختم روی زمین وزیر سخت این روی زمین وزیر سخت بودن دو تا هست اما عمل دقیقا یکیه. اون نشستن من دقیقا واقع شک واقع یکی بودن و از نظر هم به ترکیب اتحادی به اختلاف اونجوری که واقع نظر بعید نبی غیر از دراغات هم ده این نظر بعید نبی یک یک مقبول از خواننده سوری هم یک مقبول است, یک است. نظر مثلا براست و یک مقبول از نظر بعید نبی مقبول دیگه‌یه موسیقی مثلا مردم از صدای موسیقی هم ده سوری موسیقی، یا عیشنگی رو گوش وکنه مثلا اینکه حرامه و در اینجا این حال رکو عمل کنه این جور ترکیب انضباطی اونجا میگن اتحادی از این که ایشون کلمه اتحاد رو به کار برده مرموزه شیرازی این طور به ذهنی هست که ایشون مسئله رو داخل در مسئله اجتماع هم اون وقت این در این کتاب فازل ما این بحث مطرح کرده که آیا این جزء اجتماع هم هست یا نه دفتر مرموزه شده تأبیر وجود خرمت درف دارن که خرمت درف بشه باشه یکی ظاهرش اینه که خود معامله بشه باشه ظاهرش اینه امز کنم که برای توضیح مقدر بشه رو ما روز صحبت کردیم بازیم برای این که بشه مثل اشباد حاضر معاصر هم روشن بشه توضیح هم رو میکنن ببینید ما همینطور که ایشون داره و هدفش هم مطلب خاصی داره بیان تا چه مدار واضح هست ما یک اصطلاحی هست مرمون میرزه شیرازی میرزه ناینی که آی خویی همین این اصطلاح رو به کار میدارن یک موضوعات احکام داره یک متعلقات احکام داریم. هر چیزی که در لسان موضوع مفروض وجود باشه این اصطلاحا موضوع میده. هر چیزی که مطلوب الحصول باشه استلاحاً متحلم هم بیرزم در بحث مثالش رو توضیح دادن اگر گفت اکرم الالم اینا در تحلیل اصولی این کلام این تحلیل اصولی است اینطور طور بفتن. یکی وجوب این مفاده حیات یکی اکرام این مفاد مازده است یکی عالمه این شد ستو وجوب اکرام عالمه اون وجوب رو اصطلاحا حکم میگن اکرام رو اصطلاحا متعلق میگن عالم رو اصطلاحا موضوع میگن این اصطلاحشون اینه اصطلاح مرمونایی اینه موضوع هر چیزی که طلب به اون نکرده یعنی مطلوب نیست اون چیزی رو که مطلوب نیست مرمونانی باید به میکنه فوق دائره طلب هر چیزی که فوق دائره طلب باشه استلاحا بهش نگرد موضوع اون چیزی که تحت دائره طلب باشه استلاحا متعلق بس کلان استلاحه وقت به خود احرام میگن موضوع و که این میشده گاهی وقت به آله میگن متعلق و متعلق این اصطلاح روشن بشه پس متعلق داریم و موضوع داریم در اوفو بالاقود در اوفو بالاقود متعلق ما چیه وفا این متعلق وفا اوفو متعلق وفا اقود چیه اقود موضوعه یا متعلق و متعلقه تویستنی که اوفو بالاقود خود وفا این متعلق وجود به این تندان گرس اوهود متعلق ها متعلق یا موضوعه این چه باز؟ فکر می کنم اصطلاح روشن شده وقتی ما میگن اون بحث اجتماع هم اون نه این توی متعلق میاد مثلا یه یعنی چه؟ مثلا در جایی وقا به هم باشه یه عنوان حراملی هم باشه این بحث اجتماع نه مثل ما نه نفید اصلا نهان رویزن شده نیسه اوجوب در اگر وجود دردار بذاشت وجوب وجود وفا میشه بهتر بود پس این, این میشه مثلا مورد اجتماع انو نه مورد اجتماع نه اینطوریه شما یه وفا به هم حکم داره حکم داره وجود. رشوه هم حکم داره حرمه در اینجا وفا به هم با رشو جمع شده این چه اجتماع نه اجتماع نه اما اگه شما گفتین این عبد رشده است او دفعه این عبد نیست، موضوع متعلق نیست عبد موضوع نمتعلق متعلق وفاه وقت در متعلق اگر متعلق مثل آقه رشده شد اونجا شما مثل بحث اجتماعانه نه نمی کنید اونجا این بحث مطرح میکنیم که حقوق الاغود آمه تمام افراد اغود رو شامل میشه آیا شامل عقد رشوری هم میشه یا نمیشه میگید به برکت اصاز اون شامل میشه اونجا بحث اجتماعان نه مطرح نیست اونجا بحث تخصیص مطرح چون اجتماعان نه در تحت داره طلب باز باشه نه در فوق داره طلب اونی که تحت و ترده وفاه برده میگه اگر مرمو میزهش رویجه وجوده در وفا این به, به, به صلاح ما بیشتر او که گیری کرده و که اونی که بخواییم دقیقا اجتماعا را بید روی وجوب وفاه پس این راجع به این مطلب توضیحیم اون وقت اگر در جایی مسته ما نحنفیم اون وقت، اگر مسئله حجوب و بقا و مصداقه بشه با هم دیگه برای این بحث اجتماع هم نه. راست. عرض در اجتماع هم نه یعنی ادهی غالب اجتماع هست که در میان معتذرین ها بیشتر هم. در میان شیع کم میخواهد هستن. زیاد نیستن. مشروع نصفه. علا خلاف اینچون بعضی بخواهد مشروع باقید به اجتماع. حالا بارد نسبت بحثش نسبت نصفت نسبت نصفت و حضرتی زیادی هم مشروطتر بلا اشکال شهارتی بیشتری فعلا عمله به امتناعه در درجات قول به بسن اما اون مسئله اون مسئله فرق میکنه اون مسئله دیگه مره و ساله هم اینجا بحث اجتماع رو مطرح نکرده اولا ایشون غالب امتناعه و از اون مال وجوب وقایه مال خود عقب نیست تأثیر خود عقب نده و احتمال هم میرن ایشون اصلا قالب اجتماع هم نباشن بگن به خود وجوب وفا خود وفا رشده نیست یعنی اشکال مثل مرموم استاد و دیگران این از که اصلا ترکیب اتحادی نیست لفا ادهن با رشته ترکیب انزمامیه نه ترکیب اتحادی از اصلا مرموم استاد متعرض نشده این استزجار منه. چی دقت بفرمایید چون که از مشکلات در کتب اهل سنت و شیعه و نه نسبت دادن نسبت انتر... اه... و و از با این نسبت میدن، مراجع میکنه وجود نداره. اصلا مرحوم مصطفی بحث اینجا نشون داد این احتمال میدن ایشون ترکیب رو انضمامی دیدن، رشته شینی دیگنیه و زخاره بحث دیگه‌ست. ترکیب به انضمام واسه از ذات اجتماع خارجی. و اگر مسئله علم بشه رایشور منطقی در عقد نمی اشکال مثلا ایشون یا اگر هم بدونن شک میکنین عموم مثلا جاری کردن ممکن این شود چون ما بناس این بحثو جدی بکنیم حق در بحثو الان عرض اما اینکه مسئله فردیه به اجتماع انصافا شکلی داره خیلی شکله شبه بعدی چون اگر میخواد ما رهنوسی رو با اجتماعمون نه درست بکنید باعث رو وفاء به عهد و معلوم نیست ترکیب و با ترکیب صدار یک ترکیب حقیقی باشه اتحاده. ترکیب اتحادی باشه یه نقطه دیگری هست اون را از هم من توضیح میدم شاید مراز اون باشه چون در کلمات آز نرمد از خدمت با آزیتون این بحث چون بحث بسیار است در اصول آمده و زیاد تکرار میشه لذا من تکرار میخواهد روی این جرته هست کردم ما در نواست اجتماعانه من حیث و مجموع از صدر اول، چون به اهل صحابه هم داده شده این مسئله مسئله اجتماعانه به اهل صحابه نسبت داده شده و که به نحو خطوای فخری نه خود مسئله اصولی مثلا مثل نماز در لقات قصی و حق باطل مثل. یا نماز در مکان قصی و حق باطل مصر این مسئله از اهل صحابه مطرح شده از کنید در تاریخ 1400 ساله ای اسلام این تاریخ علمی اصولا سه مبنا خود دبت بکنید چون در کلمات و اصولی ما نیامده نترس سه مبنای اساسی در این مرس مفره سه تا مبنای است یک مبنا یک مبنا مبنای مبنا لحظیه یک مبنای مبنای مبنا قانونی به اصطلاح ما ورخ قانون و روح قانون و روح تشریعه یک مبنا ترمی میشه اسم جوجه عقلیه سه مبنازی نو خود دقیق رو کنی. چون در کلمات اصولی که من میگم اصولی مورد نایینی و مرموشه و دیگر در آخری علماء ما الان اینجور مسئله مطرح فرح نشده اما مبنازی اون اصلا این مسئله رو میبره توی عالم لحظ یعنی چه عالم لحظ یعنی میگه وقتی شارع گفت لا يهلو ما لمره المسلم الا به خیبت نفس منهو یا به خیبت مقدش بیشه hecho فیبته نفسلم الا به فیبته نفسلم اصلا معنا این عبارت چیه اصلا یه لباس قرصی ما یه لما اون راه این مسلم ما یه لما برتیبه نفسلم معنا چیه اون میگه معناش اینه لباس قرصی رو نخوش. لباس قرصی رو نگه ندار لباس قرصی رو هدیه معناش اینه اصلا معناش اینه لباس قرصی رو باش نهاز نخوش اصلا باش ужас honored اصلا معنای قصد حرمت تصرف قصد وعلم و انه اموالکم و عبشارکم و ابدانكم حرامون علیکم و انفسکم حرام علیکم کیونکم مهادار پیشه رکم مهادار از اون خسره که در حجت و جا فرمونه اصلا معنای این که اموال شما حرامه معنا چیه و نظر این ها اصلا شون این بحث ترکیب اتحادی و اند... اصلا نمیرم این بحث اصلا گم معنای لفظیشی نه. این هست معنای لفظیشی. این از که در کلمات اندیه از قدما آمده. حالا من نیمه خواهد بحث که اینجا بشم این خیلی لطیفشون سه مبدأ. مبدأی دوم مبنای لفظی نیست. یه مبدأی که ما استدلال اسمش رو روح قانون میذاریم. به مبنای قانونی اسمش رو میذاریم استدلال بنده تو اون مبدأی نه. اصولا خود قوانین ولو به هستر از آن واسه یکی ماده پنج یکی ماده کمیستد اما خود قوانین باید بینشون یک ترابطی باشه قانون طبیعتش اینجوریه یه تسانخ سنتیت، یه ترابط در قوانین بشری هست ولیتا چرا فرس به اوکره دادوستگی مراجعه میشه چرا به شراح قانون چون اونا میان ترابط بین مواد حساب میکنن لیگت این تراوز بین مواد قانونی یه اصل قانونی طبق این تراوز بوده قدر فرمه هر جایی تکلیفی آمن رسید به جایی که خود قانون منکرده دیگه اون تکلیف نمیاد این دیگه لفت بودی ایست مثلا اگر مالیات به قدر بکنه از اون را گم نباید دوست نیده شد مالیات دوست نیده یه گاهی دوست نیده یه مادر شد اگر گفت مثل با ماهستان جاسوسی کهاشالش معه شما با پول جاسوسی رفتی مالیات نیاز دولت دلار شما با پول جاسوسی مالیات نیاز میگه اول شما این پولی که در سر محشوب این فرول مصادره میکنن دوه این باتتر پایتو ما نیاز دارید این پرووز قانونیه، که قانونی این اینطوریه هر جاییه قانون نیازول دخ بکنید تا دری یک جایی خود قانون نرک میکنه لازم نیست اون من و لسان خودش باشیه او بخش بکنیم نیمیخواد بگه نماز بکن نماز در حریر نکن نه بگه نماز بکن قرص نکن نماز بکن دوزی نکن نماز بکن مثلا به مثلا با قشق کشه ها پول تریه نکن این طال نماز بکن قش باطل باطله معامله که قشق باطله با پول مثلا کشیدن تصویر درست نمیشه این معناش اینه که نماز بخون این نماز بخون میاد تا که کنه میشه دوزید این اسطلاح هم این اسمش اصطلاحاً ترابط قانونیه این هم در کلماته علمه همون همونه این هم اصطلاح بخشی ریگاهیه اصلا خود اون در یکی بست سلولا تقصد این این طوریه. و رضا اینا نتیجه شون این طوریه این این زرافت اینا زرافت درسته شیئی ارزش داره نماز بخون بخواییم تفصیح قانونی بکنیم نماز بخون اطلاق نداره کس نکن اطلاق داره همیشه نهی اطلاق داره خب دکتیم تفصیح قانونی نماز بخون اطلاق نداره الان بحثی اجتماعی اصلا نقطه بحثی اشتماعی رو چیه؟ اطلاق سله با اطلاق لا تحسن. توی صباح در داره برسی یا لفظه محصوب جنگه نقطه اطلاقه این تصمیرون منتعیبی اینجا میشه سله اطلاق نداره لا تصمیر اطلاق داره این یه روحا قانونه یه روحا قانونی اصلا نمیگه سله تو نماز بخون یعنی تو مسجد تو خونه تو بیاهون تو مال محبوم اصلا تو مال محبوم توش نیست اما تو نماز ب ملاکش هم هم نیست. نه تفایش هم و نه نیست. نیست. اگر نیست این فهم قانونیه هست شد چیم ها کنم پس دو تا اطلاق نداریم که بگیم حالا تقیید میخور یا نکنیم می بخوره یک اطلاق داریم اونم نهیه طبقه این تصالات یک اطلاق داریم نهیه امر دیگه اطلاق نداره بله را تقیید اطلاق داره قصد نکن یعنی تو قصد مطالعه نکن تو زمین ن فوتبال بازی نکن تو زمین ن قصی زمین تصی رو بکشی نه تو زمین و ناز نکن این برش اطلااق ب این برش اطلاق داره که همه کارها رو نکن اما اون برش اطلاق نداره نماززه به هر جوری بخون. خوب بود. این راهی دوم خیلی توجه رو به این راه سر حال توش حی، اون ترکیب به اتحاد مهمونمه با من جانند این راهی از کنال اصول ما رفتن و من توضیح هم هم هستم تقریبا برمش شیفون من دردیم که متکلمین خصوصا معتذره تو بوشیم شروع کردن به افاظاتی بیشتر از اون جامعه اصلی این تفکر ولذای هست شروع کردم به اتحادن نماز با قرص اتحادگاره یادن به این بحثه هم همونی دو ما رو ببین با دو مبنای اول ما دنبال اتحاد نیستیم دقت می‌کنی اصلا دنبال اتحاد ما چیکاریم یک ترکیب اقتصادی اگه نگاه بفرمایید چی خیلی طولانی بر آزیا با هم ناینی که اگر در پس با هم دیگه داشتن ترکیب اتحادیه درهای مختلفی اصلا ما دنبال ترکیب اتحادی و موارد ترکیب مادی یا نکته لفظی یا نقطه قانونی اینی که مرحوم لیزه شیرازی داره این را که الان علمای ما گفتن که ترکیب رو اتحادی گرفتن یعنی گفتن اجتماع و نه جایی که ترکیب اتحادی باشه، ترکیب اتحادی دریعنی یه عمللی یه کاری است که به لحظ یک تغییرقیقت معمولی وا داره کوف میکن و این دو عنوان ازش انتزاع میشه تبی هم نماز هم بحث. ما این رستوشون اقللی؟ اما اگر ترکیب انظمان شدی از بحث اجتماع خارجه و موجب بطال نمیشه. پس این بحث آیا؟ او اوفو بالعبود مانه نخیه رو میگیره اگر دوباره ترکیب باشیم انصافا شهره داره که ترکیبش داشت ترکیب داره. اما اگر دوباره ترکیب داره که ترکیب داره که ترکیبش داشت بیاد در جاهایی که محرمه محرمه شما بشه شد دقیق کرد ترکیب یک قرارداز میده بسته با دولت پولی داده به دولت در مقابل وقتی در معلوم شد در دولت که این پول روشه از ها جاسوسی برسته این ما رو از ها جاسوسی هم معاملات رو اصلا مصادره میکنه, هم اصلا مصادر میکنه هم. یعنی این معلوم نیست که اصولا اگر از وقتها به عرض مسترزمیه که عمل محرم شد سحن عرفی قانونی اون رو میبینه حالا بخواد ترکیب اتحاضی باشه و ترکیب از زمان باشه این نقطه ترکیب باشه اگر بنابش من بین عرض خود رکرد بکنید من بین عرض و خواب بکنم که دارم رشته بیدنم تصفه شد من با این عرض خودم کاری کردم خونه یه ده میلیونی رو یک میلیون بین آقا دارم دو آنوانی که درمت من حق بکنه نش مسلمه دیج این یعنی یه چیز مطالبه شده سوال اینه که اوقوبات و قبض بول برای یک ماجر با اون عدله کیش که حرمه میشه اینجا رو شامل نمیشه سواله اصلا حتی میشه انذار می. رو که اعطایی میشه شریعته تا مرتب بکنه که بیا ببین عقل و حادار باشه که قاضی که تو بین این عهدی که اومده باشه به بده حالا مضافن به حرمتش و کبیره بودن جزء کفرون بالله العظیم پسیه بحث ما اینه دف کرد بحث دیگر ما ممکن است از راه دیگری وارد بشه خیر از بحث اجتماع در و اون از راه خود است این هم یک لکس دیگری است این ری به بحث اجتماع هم نه نداره گاهیه خرد شده با هم دیگه. ببینید اگر یک عنوان تحت عنوان اشتخاب قرار خود اون عنوان نه عنوان انتظاری خود اون عنوان حرام و حلال داره قانون و پانون اینجا ایده به تنهایی است که هراموشه نمیشه این نیست این اینجا طبیعیه اون اولی سر اون ظرافت با اجتماعی مثلا ادا قوم سو اعلان صلاط فقط به اوجاش نگفت فخرزادی نگفت گفت خارجی خدا خود از خارجی عنوان نیست انتظاری نیست این خیلی خارجی اگر با آب مردم باشه حرامه خود قائله حرام. اگر با آب استیم که شما از خود قائله جالی دهید نه اون وان انتظار این استیمال نه می‌دی دارم لازم داره خیلی که وزیر با آن شخصی استیمال نه این استیمال نه نیست نه چرا؟ چون خود قائله خوب ده خدای دیگه هم شده نمی‌خوام اون بحث بس استودیشم خود قائله دوچوره قائله حلال و قائله حرام نه عنوان وقتی مسلمه هر جا قانون بیاد خود قانون نمیاد قسم حرام رو شامل بشه قسمی که خودش حرام گرده یعنی وقتی گفت حق سلو یعنی حق سلو قسلن و واقن اصلا قسل حرام رو شامل نمیشه خود قانون قسل حرام رو شامل نمیشه اینجای که قسلن ترابط قانونی محرد اونی که بحث اجتماع رو نرگوی چی بود؟ دو تا عنوان بود عنوان قصد و عنوان سلافی کسایی که گفتن اجتماع رو نگم باطله میگفتن اگر دو تا عنوان رو باشی مثل قصد اگر نماز منتهی به حرام شد مثل قصد به حرام فرق نمی کنه خوب دقیقه در جایی که خوب ایمارده فرمود در جایی که خود و عنوانی که به شهلو گرفته دارایی پرده هلاله پرده حرامه قرده هم خطاب شامل پرده حرامه نمیشه او قطعی شامل پرده حرامه نمیشه نمیتونه شعر امر بکنه به قصدی که حرامه اصلا نمیشونه قانون خود این تغییر نیست این خضای قانونی اصلا فضای قانون و فضای تشریع یک داره. این نقطه فعلی تشریینه. اینه دیگه ها احسن. ما در صحبت اینه اگر ما خود عقد خود عقد است نه مت موضوع متعلق متعلق خود این عقد است و وقت شامل نمیشه فهمو بله ما سراغ خلاف بحث نکنیم اگر به لحاظ بافا نگاه کردیم اجتماع رو اگر به لحاظ نگاه کردیم بحث اجتماع رو نمی‌بینید چون خود این عهد شما رشوت کرد این قرارداد شما که جنس ده میلیونی رو به میلیون بفروشید خود این رشوت خود این سه مشتیه چون این رشوت ما استیغار خیال به بحثو گذاش، فردا ان شاء الله میاد، یه وقت شما چون که یه سر سرشین که ریشه قربان نداره، خوب دقیقاتی. وضا در بحث هدیه گفتم، مگه پول به عنوان هدیه بده، اونم بشه. اینی که منظور شعر فرموده، هر حو درش به فیه هدیهتون ملحق در درش. خب این مطلب درست نیست. هر پولی که شما ببین عنوانش هدیه است. هر کاری که شما بکنید پولی قیره مستحق بگید داده بشه به نقصه شما حکومه اسمش رشبه است. به اسم رشیه بدین رشبه است. به اسم حدیه بدین بگید توفهی طبزی درمیش چی نیانی؟ بلکه سبز توفهی درمیش وقتی اسمی که بدین رشبه است. اسمش رشبه اسمش عرض نمی کنه خب زنافه دقیق معامله ای که ده میلیونی رو به یک میلیون میخیو خودش رشبه هست این که شخصانه یر مایال حقو بر رشوه. چون رشوه اون مثل کلاه نیست که عنوان داشته باشه. مثل بدهی نیست، بدهی رو عنوان هدیه عنوان در مقابل هدیه نیست. هر پولی شما به قاضی بدین، برای اینکه به نحوی شما حکم بکنه. حالا به نحوه کم کردن پول معامله باشه، با قراردادش باشه. به اسم هدیه بدین، به اسم فلسفی دوستی و رفاقت، به هر عنوانی پیش بشه، این عنوان نمیخواد. شد که مفهوم به وجود اراده بری ولی تو این بحث نمیگیره این خلاصه از نظر قانونی به این چه میخواست یه صورت شلال وحشی صورت اصلا خود قانون اعتذار میکنه که بنهاد بشه به اون تردی که مجاز باشه به صورت مجاز فرض کنید قضا تا نمیخواد خود رو در قضای قانون پخش سل و قصفا مباه اصلا خودش اینطوری، این ترکیب قانونی اینه پس این یک نکته قانونی داره که لحظ منصرف است منصرف مباه الامور منصرف است به قضا عقد مباه عقده روشن شد و نظام که شیخ هم بیتره با این قضا شیخ با مجموعی این شباه درای کنه با شیخ و زنها پس در از زوره ما بباسه ده شرکت همشت بخواست داره این خانم که <تصفيق>